با تمام این تغییراتی که در بدن مادر باردار اتفاق میفته اگر مادر قبل و در طی بارداری از یک بدن متناسب و سالم برخوردار باشه و حرکات ورزشی و حرکات کششی اصلاحی رو در دوران بارداری انجام بده این شکایات و مشکلات به حد بسیار زیادی کاهش پیدا میکنه و دوران نقاهت بعد از زایمان مادر هم خیلی خیلی کوتاه میشه در این بخش میخوام توضیح مختصری در مورد مشکلات اسکلتی عضلانی شایع در دوران بارداری و تظاهرات بالینی اونها بدم. این مشکلات در اثر عدم توجه، سهلنگاری و عدم مراجعه به موقع به متخصصین امر میتونه به یک مشکل مزمن در زندگی مادر تبدیل بشه. در حالی که بعضی از اونها با چند تا توصیه ساده قابل پیشگیری هستند. مشکلات اسکلتی عضلانی شایعی که در دوران بارداری و پس از زایمان در مادرای باردار اتفاق میفته عبارتند از درد پشت، درد لگن و پایین کمر، اختلال در عمل کرده مفصل جلویی لگن که اصطلاحاً به انفیز پوبیست گفته میشه. جدا شدن عضلات راست شکمی که به اون دیاستاز رکتوز گفته میشه و اختلال در عمل کرده عضلات کف لگن حالا به تفکیک در رابطه با هر کدوم از این مشکلات صحبت میکنم و راهکارهایی رو خدمت شما عزیزان ارائه میکنم درد پشت در بارداری خیلی شایع هست و تقریباً نیمی از مادرای باردار از اون شکایت داره و در حدود 6 درصد موارد این درد خیلی شدیده و در 36 درصد موارد هم مادرها ذکر میکنن که این درد گاه گاه بروز پیدا میکنه یه سری عوامل در بروز درد پشت دخیل هستن این عوامل چیا هستن افزایش وزن مادر در دوران بارداری افزایش قوس کمر مادر، تغییراتی که در زاویه دنده های مادر در قفسه سینه ایجاد میشه. فشارهایی که به اروغ و اعصاب پشت مادر وارد میشه. تغییرات ناگهانی که مادر در تغییر وضعیت بدنش میده. یعنی به یک جابجا جا میشه بلند میشه میچرخه و میشینه. قبل از بارداری دردهای مزمنی رو در ناحیه پشتش داشته، حالا در دوران بارداری این دردها بیشتر شدن. کارهای سنگین و فشارهای مداومی که به ستون فقراتش وارد میشه. عادات غلط قرارگیری مادر باردار و وضعیتهای بد قرارگیری مادر باعث بروز درد پشت میشه. همچنین تعداد بارداری های بالا و از طرفی هم سطح بالای ریلکسین از عواملی هستند که در ایجاد درد پشت دخیلند. بالا رفتن سطح هورمون ریلکسین در ابتدای بارداری توجیه کننده علت درد در پشت و لگن مادر هستش قبل از اینکه مادر افزایش وزن پیدا بکنه چون که ریلکسین در سه اول بارداری به حد اکثر میزان خودش میرسه مطالعات هم نشون دادن که مادرانی که قبل از بارداری از درد پشت شاکی بودن در زمان بارداری دردشون بیشتر میشه معمولا پس از زایمان درد پشت به تدریج کم میشه و در نهایت هم قطع میشه